فصل شانزده سگام تا تحقق رویاها ابتدا فکری به ذهن شما خطور می کند. سپس آن فکر به ایدهها و برنامه ها تبدیل می شود و بعد آن برنامه ها به واقعیت. همانطور که می بینید همه چیز از تخیلات شما شروع می شود. ناپل قانون موفقیت. کتابهای بسیار زیادی هستند که به موضوعات تعیین پیگیری و دستیابی به اهداف میپردازند و بعضی از این کتاب ها واقعا خیلی خوبند. ممکن است به یک کتاب که تماماً درباره این موضوعات است نیاز داشته باشید، شاید همین گونه نباشد. کاملا به خودتان بستگی دارد. من به شخص دوست دارم که مسائل را تا حد امکان ساده نگه دارم، زیرا ساده بودن معمولا بسیار اثربخش تر است. مهمترین که سادگی چیزی است که به بهترین نحو با فلسفه برتری خفیف همخانی دارد. به یاد داشته باشید اگر کارهایی که برای انجام دادن در نظر می گیرید، ساده باشند در این صورت از مسیر برتری خفیف منحرف نخواهید شد هر کسی روی کرد متفاوتی درباره تعیین اهداف دارد اما برای تحقق بخشیدن به رؤیاهایتان لازم است از سگام ساده و اصولی پیروی کنید همه افرادی که تا کنون به موفقیت دست پیدا کردند به طریقی نسخه ای از این سگام را استفاده کردند البته به صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه اینها سه گام عمومی در مسیر دستیابی به رؤیاهای بزرگ هستند برای تحقق بخشیدن به یک هدف باید آن هدف را به صورت دقیق و واضح مشخص کنید برایش زربالعجل تعیین کنید و آن را به صورت مکتوب در جایی یادداشت داشت کنید باید هر روز به آن نگاهی بیاندازید و ای داشته باشید که بر طبق آن شروع کنید گام اول هدفتان را بنویسید. مهمترین مهارتی که برای دستیابی به موفقیت در هر جنبه از زندگیتان نیاز دارید مهارت تجسم کردن است. تجسم کردن به معنی داشتن قابلیت و توانایی خلق یک تصویر روشن و واضح از چیزی است که هنوز واقعا و عملا اتفاق نیفتاده است. آن تصویر باید آنقدر شفاف و واضح باشد که گویی کاملا واقعی است. تجسم کردن صرفا با خلق یک تصویر در ذهنتان به صورت اثر بخش و مطلوبی رخ نمیدهد. اگر رؤیاها و آرزوهای شما فقط در ذهنتان رخ میدهند، این موضوع شما را به چیزی فراتر از داشتن افکار واهی و پوچ نمیرساند. و مانند این است که بگوییم خب حالا یه امتحانی میکنم. اما همانطور که یودا شخصیتی در سری فیلم های جنگ ستارگان به آن اشاره کرده است، یا انجامش بده یا انجامش نده یه امتحانی می کنم معنی نداره درست است که این عبارت یک خط از دیالوگ یک شخصیت خیالی فیلم است اما هنوز هم یک حقیقت قدرتمند است تجسم کردن به معنای واقعی کلمه یعنی چیزی را از هیچ خلق کنید و به آن واقعیت ببخشید به طور طبیعی شما نمی توانید این کار را تنها با استفاده از ذهنتان انجام دهید آن رؤیا لازم است که فیزیکی و ملموس شود و احساسات شما را درگیر کند. به عبارت دیگر لازم است که آن را بنویسید. حتی کشیدن تصاویری از رؤیایتان بر روی کاغذ که به آن تخته رؤیا هم گفته می شود خیلی بهتر است. اینکه با شخص دیگری با صدای بلند درباره آن رؤیا صحبت کنید، به مراتب از همه اینها قدرتمندتر است. اما در هر صورت باید آن را به شکل مکتوب در جایی بنویسید. لحظه که این کار را انجام دهید، آن رؤیا شروع به واقعی شدن می کند رؤیای چه چیزی را در سر دارید؟ یکی از رؤیاهایتان را انتخاب کنید، هر رؤیایی که باشد خانه رؤیایتان، محله رؤیایتان، تعطیلات رؤیایتان، شغل رویاییتان، ازدواج با شخص رویاییتان یا مقام و منصب رویاییتان. رؤیایی را انتخاب کنید که حقیقتا و عمیقاً آرزوی تحقق یافتنش را دارید. آن را در جایی بنویسید و با چندین کلمه آن را توصیف کنید. سپس رؤیاهای دیگری را انتخاب کنید تا هنگامی که پنج مورد از رؤیاهایتان را مشخص و فهرست کنید. اگر تردید دارید که چه چیزهایی را بنویسید بدانید که این رؤیاها میتوانند توانند هر چقدر که خودتان دوست دارید بزرگ یا کوچک باشند اما هیچیک از آنها بهتر با ارزشتر یا کم ارزشتر از دیگری نیست خب حالا به رؤیاهایتان دو عبارت توصیفی اضافه کنید که آنها را مشخصتر و معینتر میکند. کند یک چقدر و دو تا چه زمانی به هر یک از رؤیاهایتان هایتان نگاهی دوباره بیاندازید و عباراتی را به آنها اضافه کنید که آنها را کاملا معین و مشخص می کند. مثلا اگر رؤیایتان این است که به استقلال مالی برسید، این رویا دقیقا برایتان به چه معنی است؟ باید چه مقدار پول در حساب بانکی یا سرمایه هایتان داشته باشید یا درآمد سالانتان باید چقدر باشد که آن را داشتن استقلال مالی بدانید؟ اگر لازم است شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرید، مانند پرداخت کردن همه بدهی ها. آنها را نیز اضافه کنید. فرض کنید: یکی از رؤیاهایتان هایتان داشتن سلامتی کامل است چگونه می توانید آن را معین و مشخص کنید؟ یکی از راههایش می تواند این باشد که دقیقا توصیف کنید با داشتن سلامتی کامل چه احساسی دارید؟ چه نوع فعالیت های را انجام می دهید و انجام دادن آن فعالیتها چه احساسی به شما می دهد؟ تصور کنید رؤیایتان را برای شخصی بازگو می کنید که بسیار برایتان مهم است و آن شخص می گوید مطمئن نیستم که منظورت را کاملا متوجه شده باشم. آیا می توانی بگویی دقیقا منظورت چیست؟ و حالا عبارت دوم تا چه زمانی؟ گفته می شود که اهداف رؤیاهایی با زربالعجل هستند. با اختصاص دادن ضرب اجل به رؤیاهایتان هایتان آنها را به اهدافی عملی و ملموس تبدیل کنید. به هر یک از رؤیاهایتان نگاهی بیاندازید و از خودتان بپرسید تا چه زمانی؟ احتمالا نام اصل پارتو را شنیده که اغلب از آن به نام قانون 80-20 یاد می شود. این قانون می گوید که مثلا 80 درصد از فروش شرکت را 20 درصد از نیروهای فروش شرکت محقق می کنند. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی که این تئوری را در اوایل قرن بیستم ابدا کرد در واقع هدفش توصیف این موضوع بود که ثروت، نوآوری و ابتکار در هر سیستم اقتصادی یا اجتماعی که باشد در تعدادی از نخبه‌های خود برگزیده متمرکز می شود. به زبان آمانه پارتو در واقع منحنی‌های های موفقیت و شکست را توصیف می کرد، هر دو روی برتری خفیف را یک کاربرد دیگر اصل پارتو به این صورت است هشتاد درصد از هر کاری که انجام می‌دهید معمولاً در 20 درصد پایانی زمان مقرر برای انجام دادن آن کار به اتمام می‌رسد این موضوع می‌تواند به یک حقیقت پنهان منتهی شود اگر شما ضرب الاجل تعیین نکنید آن 20 درصد پایانی هرگز نمودی پیدا نمی‌کند و شما همیشه در آن هشتاد درصد زندگی می‌کنید و می‌گویید یک روزی یک روزی روزی است که هرگز از راه نمی رسد. هایتان را بنویسید، آنها را به صورت واضح و مشخص توصیف کنید و ضربالعجل مشخص برای تحقق یافتن آنها در نظر بگیرید. با این کار قدم بزرگی برای تحقق بخشیدن به آنها برداشته اید. گام دوم هر روز به اهدافتان نگاهی بیاندازید. اصلی ترین دلیل مکتوب کردن رویاها این است که بتوانید هر روز به آنها نگاهی بیندازید و مرورشان کنید. اینکه چرا لازم است هر روز به آنها نگاه بیندازید دقیقاً به همان دلیلی است که باید با افراد مثبت مصاحبت و همنشینی کنید. باید با نیروی جاذبه ای که شما را به سمت معمولی و متوسط بودن می کشد مقابله کنید. به یاد دارید که احتمال شکست خوردن شما نوزده به 1 علیه شماست. شما لازم است دائما به مغزتان یادآوری کنید که به کجا میروید زیرا در غیر این صورت از مسیرتان منحرف میشوید و راهتان را گم می کنید. اگر دائما و مرتبا روی مقصدتان متمرکز نباشید شبیه یک سفینه فضایی بدون ژیروسکوپ خواهید بود به سادگی به فضای خارجی شکست منحرف میشوید و هرگز به مسیر درست بر نمیگردید حتی اگر بسیار به هدفتان نزدیک باشید بعد از ایمان و اشتیاق سوزان سومین عاملی که ناپل اونهیل در بیش از 500 شخصیت بسیار موفق دوران خودش کشف کرد چیزی بود که آن را تلقین به خود نامید قدرت ناشی از اینکه پیوسته به خودتان بگویید اهدافتان چه چیزهایی هستند او پی برد که این افراد به طور میانگین روزی دو این کار را انجام میدهند باید از خودتان بپرسید چرا قولهای صنعت، سیاستمداران برجسته و دیگر اشخاصی که در بالاترین سطوح شاخه کاری خودشان هستند احساس می کنند که لازم است هر روز به خودشان بگویند که مشغول چه کاری هستند این موضوع مشخصا به این دلیل نیست که آنها کند ذهن و گیج هستند یا حافظه بدی دارند بلکه به این دلیل است که آنها قدرت زمیر ناخداگاه را میشناسند آنها می‌دانند که باید زمیر ناخودآگاهشان را به طور پیوسته با یاداوری اهدافشان تقویت کنند تا زمیر ناخداگاهشان با هر چیزی که در مسیرشان قرار می‌گیرد و از اهدافشان حمایت می‌کند هماهنگ و موافق باشد و چیزهایی که توجه و حواس آنها را از اهدافشان منحرف می‌کند نادیده بگیرد اطرافتان را با نشانهای از اهدافتان پر کنید و مدام آنها را به خودتان و زمیر ناخودآگاهتان یادآوری کنید مغز شما بسیار پیچیده تر و قدرتمندتر از بزرگترین کامپیوترهای دنیا است و زمیر ناخداگاهتان به مراتب بزرگترین منشه حواظپرتی شماست. یادتان هست قبل از اینکه حتی به کلاس اول بروید چند بار کلمه نه را شنیده بیش از چهل هزار بار که تعداد و تأثیر آن هشت برابر تقریباً پنج هزار بله است که شنیده اید. مغز شما یک نسبت سنگین 8 به یک از کلمه نه ثبت کرده است که این گونه تفسیر می شود. نمی توانی این کار را انجام دهی. این تلاش تو هرگز به نتیجه نمیرسد؟ این کار غیر ممکن است. چرا اصلا به خودت زحمت تلاش کردن بدهی؟ همه ما با کول بار سنگینی از شرطی سازی های منفی رهسپار سفر موفقیت شده ایم. این موضوع هیچ اشکالی ندارد، من و شما نمی توانیم دوباره به دوران کودکی من برگردیم و این موضوع را تغییر دهیم و البته برای تحقق بخشیدن رؤیاهایمان نیازی به این کار نداریم کاری که می توانیم و باید انجام دهیم این است که اطرافمان را با بله خودمان پر کنیم اطرافتان را با پیام پر کنید که به شما می گویند رؤیاهایتان امکانپذیر و واقعی هستند رویاهایتان هایتان نه تنها امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیر نیز هستند. این پیامی است که زمیر ناخودآگاهتان باید دائما در آن قووط ور باشد. اینکه رویاهایتان را به صورت دقیق و با سریح ترین عبارتهای ممکن و نیز با یک زرب العجل بسیار مشخص و محکم روی کاغذ یادداشت کنید محیطی سرشار از بله برای اهداف و رویاهایتان ایجاد می کند. و هنگامی که آن نیروی جاذبه نوزده به یک شروع به رخنه کردن در زمیر ناخداگاه تان می کند و زمزمه می کند که آیا آنها واقعی هستند، لازم است که فوراً و بیدرنگ پاسخ دهیم بله، بله موضوع شگفتانگیزی وجود دارد که بارها رخداد آن را دیدم، اما باز هم با دیدن آن متحیر می شدم. وقتی که اهدافتان را به صورت واضح و ملموس مشخص می کنید، زندگی به نحوی خودش را بازارایی می کند که آغازگر مجموعه از رویدادهایی شود که هرگز نمی آنها را پیشبینی یا برنامه ریزی کنید. اگر فقط بنشینید و سعی کنید که اهدافتان را تعیین کنید، اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما وقتی که اطرافتان را با تعبیری واضح و مشخص از اهداف ملموستان پر می کنید، زمیر ناخداگاهتان روی آنها کار می کند و اگر فلسفه درستی یعنی فلسفه برتری خفیف داشته باشید اقدامات درستی را اتخاذ می کنید و آن اقدامات را تکرار می کنید و در نتیجه رویدادهایی رخ میدهند و شرایطی پدید می آید که هرگز نمی توانستید تصور کنید و همان رویدادها شما را به اهدافتان می رسانند. گام سوم بر طبق یک برنامه شروع کنید این همان جایی است که مردم اغلب از مسیر درست خارج میشوند بدیهی است که شما برای رسیدن به اهدافتان نیازمند برنامه درست هستید ای که مؤثر باشد نه یک برنامه کامل نکته این نیست که باید برنامه هوشمندانه و زیرکانه داشته باشید که تضمین کند شما را تا خط پایان و دستیابی به هدفتان همراهی کند. نکته این است که باید برنامهای داشته باشید که موجب شود کارتان را آغاز کنید. حتی نکته اینجاست که برنامه اولیتان لزوماً شما را به هدفتان نمی رساند. در واقع آن برنامه مطمئنن شما را به هدفتان نخواهد رساند، حداقل اقل نه آن ای که در ابتدا بر طبق آن کارتان را آغاز کرده اید. هیچ کسی این درجه عالی از دقت و زرافت را در برنامه ریزی بلند مدت ندارد. در طول راه نیز متغیرها و مسائل غیر منتظری به وجود می آیند که برنامه اولیه را نیازمند تعدیل و اصلاحات می کنند. شما باید بر طبق یک برنامه شروع کنید اما برنامه ای که کارتان را با آن شروع می کنید برنامه ای نیست که شما را به هدفتان می رساند. برای تاکید بیشتر یک بار دیگر این جمله را تکرار می کنم. شما باید بر طبق یک برنامه شروع کنید اما برنامه ای که کارتان را با آن شروع می کنید برنامه ای نیست که شما را به هدفتان می رساند. این موضوع ممکن است به نظرتان اصلا منطقی نباشد. منظورم این است که اگر این برنامه شما را به هدفتان نمیرساند، پس چرا زحمت طراحی آن را به خودتان بدهید؟ نکته آن کجاست؟ نکته اش این است که شما به برنامه نیاز دارید که بر طبق آن شروع کنید دقیقا همانطور که به یک سکه یک سنتی نیاز داشتید همانطور که اولین گامتان را برداشتید همانطور که ابروهایتان را درهم کشیدید لبهایتان را قنچه کردید تقلا تغلا کردی تا اولین جملتان را به زبان آورید آیا فقط همان سکه یک سنتی بود که بوجه یک امپراتوری را تأمین کرد؟ آیا فقط همان گام اول بود که برنده شدن در ماراتون بوستون را به ارمغان آورد؟ آیا فقط همان اولین جمله در کودکیتان بود که مدرک کارشناسی ارشد ادبیات را برایتان به ارمغان آورد؟ نه اما بدون آن سکه یک سنتی، بدون آن اولین گام متزلزل و بدون آن اولین جمله با لکنت، رؤیای شما هرچقدر هم که عمیقاً خواهانش باشید، هرگز رنگ واقعیت نمیگیرد. قدرت یک برنامه در این نیست که شما را به هدفتان برساند، بلکه در این است که موجب شود کارتان را آغاز کنید. مردم به اشتباه گمان می‌کنند که به یک برنامه بی‌نقص و عالی نیاز دارند، چون این برنامه‌ای وجود خارجی ندارد. فی چنین چون این برنامه نمی وجود داشته باشد چرا که برنامه درباره رسیدن به هدف نیست بلکه فقط درباره به حرکت درآمدن و شروع کردن است دقیقا به این دلیل است که شما به یک برنامه نیاز دارید اگر نقطهی برای شروع نداشته باشید هرگز شروعی به وقوع نمی پیوندد. فردا و روزهای دیگر هنوز هم با سایر قرباقه ها روی سنبل آبی می نشینید در حقیقت، اگر انرژی زیادی را برای یک برنامه صرف کنید و تلاش و توجه زیادی را خرج عالی کردن آن کنید، احتمالاً تمام انرژی، انگیزه و لذت ناشی از تهیه آن برنامه را از بین میبرید. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می آید. تلاش نکنید که همه آن برنامه و مسیر را کاملاً مشخص کنید. اگر می‌خواهید موفقیتتان را دو برابر کنید، نرخ شکستهایتان را دو برابر کنید. شما کارتان را با یک برنامه شروع می کنید و سپس درگیر فرایند یادگیری پیوسته از طریق مطالعه و انجام دادن میشوید. در تمام مدت، مانند یک موشک فضاپیما که در مسیرش به سوی ماه 97 درصد از زمان سفر را خارج از مسیر اصلی در حرکت است، مسیرتان را اصلاح و تنظیم می کنید. جیروسکوپتان برای اینکه شما را به مسیر درست برگرداند، کامپیوتر رویایتان را با اطلاعات درست تقویت می کند و شما راهتان را در مسیر تسلط یافتن بر هدف رویایتان ادامه می دهید. موفقیت تحقق تدریجی یک هدف ارزشمند است، اگر این موضوع را فلسفه زندگیتان قرار دهید، نگرش‌ها و اقداماتی را به وجود می‌آورید که برای تحقق تدریجی یک برنامه بهتر و بهتر به آنها نیاز دارید. شما به یک برنامه اولیه نیاز دارید تا بتوانید به برنامه دومتان برسید و سپس به برنامه سومتان دست پیدا کنید و آنگاه برنامه چهارومتان را تهیه کنید. برنامه اولیه شما برنامه نیست که شما را به هدفتان برساند اما به آن نیاز دارید تا بتوانید از جایی شروع کنید. در حرفه خودم آموزش از مهمترین عواملی است که موجب موفقیت در کسب و کار می شود. آموزش بهترین ابزار برای تعدیل و هماهنگی است. از آنجایی که در شرکت ما افراد بسیار زیاد و کاملا متفاوتی با پیش زمینه ها و تجربیات گوناگون مشغول به کار هستند همواره در حال آموزش دادن به آنها هستیم. این موضوع به این معنی نیست که چیزهای بسیار زیادی برای یادگیری وجود دارد بلکه بیشتر شبیه یادگیری نواختن موسیقی است در کل فقط دوازده نت داریم اما برای یادگیری نواختن موسیقی لازم است که آنها را بارها و بارها بشنوید و بنوازید در عین حال برای آموزش هایی که میگویند نحوه انجام دادن این کار دقیقا به همین طریقه است ارزش زیادی قائل نیستم زیرا مراحل و ترتیب اقداماتی که مؤثر واقع میشوند، هر بار و برای هر کسی متفاوت است. شما می توانید مفاهیم کلی، شیوه تفکر و اقدامات مؤثر را به مردم آموزش دهید، اما نمی توانید برایشان برنامه مشخصی را با جزئیات تفصیلی تهیه کنید. زیرا شرایط متفاوت است و همواره تغییر می کند. به همین دلیل لازم است که برنامهای داشته باشید تا کارتان را بر اساس آن شروع کنید. اما نمی توانید با برنامه ای شروع کنید که قطعا شما را به هدفتان می رساند. شما باید با فلسفه ای شروع کنید که شما را به هدفتان میرساند، با فلسفه درست برنامه را پیدا می کنید. برای اینکه مثالی واقعی از قدرت تمام عیار یک برنامه ناقص را به شما نشان دهم داستانی واقعی را برایتان تعریف می کنم که چگونه برای یکی از شرکت های قبلییم یکی از بزرگترین نیروهای فروش و توضیع را در سراسر آلمان ایجاد کردم. شرکتی که به یکی از بزرگترین سازمان های از نوع خودش در کل اروپا و یکی از موفقترین سازمان ها در تاریخ آن صنعت تبدیل شد.